به نام خدا کتاب داستان‌های یوگوسلاوی نوشته نادا چورچیا پرودانوویچ، مترجمان کامیار و مهیار نیکپور ارائه شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده اعظم قرائی با سلام خدمت مخاطبین کانال هزار افسان امیدوارم که حالتون خوب باشه داستانی رو که میخوام به شما عزیزان تقدیم کنم از کتابی هست که مشخصاتش ذکر شد به نام سرنوشت یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود روزی بود روزگاری بود دو برادر در خونه ای که از پدرشون به ارث برده بودند با هم زندگی میکردند یکی از اون برادرها مردی بسیار پرکار و سختکوش بود از صبح تا شب تو خونه با مزرعه کار و فعالیت میکرد اما اون یکی برادر تنبل و بی‌آر و خوشگذرون بود و از دسترنج برادر پرکار استفاده و خوشگذرونی میکرد. این دو برادر زیر سایه التاف خداوند مهربون همه چی داشتند گله گوسفند اسبهای زیاد گله گاو خوک و تعدادی کندوی اصل و بسیاری زمین کشاورزی یه روزی از روزها برادر پرکار که خیلی خسته شده بود اومد به برادر تنبل و بی آرش گفت بهتر نیست ارث پدر رو بین خودمون تقسیم کنیم و هر کدوممون بریم دنبال سرنوشت و زندگی خودمون برادر تنبل سعی کرد که برادر پرکار رو از این تصمیم برحضر کنه. گفت ای برادر چرا همچین کاری رو بکنیم ما که داریم با هم خوش و خورم زندگی می کنیم و اصلا تو مالک ثروت من هستی. و من اصلا به تو نمیگم که تو با ثروت من چیکار بکنی سهم من و تو ندارد. من و تو برادر هستیم و با هم داریم از این ارث پدر استفاده میکنیم و من به تصمیم های تو احترام میذارم اما برادر پرکار که به خیلی خسته شده بود گفت من تصمیمم رو گرفتم و بهتره که ارث پدر رو تقسیم کنیم برادر تنبر گفت حالا که تصمیمت رو گرفتی باشه من حرفی ندارم هر کاری دوست داری بکن و هرچی دوست داری به من از این ثروت بده برادر پرکارم تصمیم گرفت ارث پدر رو بین خودش و برادرش به مساوی تقسیم کرد و اینجا بود که هر کدوم از برادرها صاحب املاک خودشون شدند برادر تنبل که هیچ کاری بلد نبود چوپونی گرفت برای گوسفنداش گاوداری گرفت برای گله گاوش بزچرونی گرفت برای بزهاش و مهتری گرفت برای اسبهاش و یک نفر رو هم گرفت برای مراقبت از کندوهای اصلش و همه اونها رو صدا کرد و بهشون گفت من تمام این کارها رو به شما میسپارم. خودتون میدونید و این کارها و در نهایت من به شما دستمزد میدم و خودش هر روز میرفت و مثل روزهای قبل کنار آتیش می نشست و خوشگذرونی می کرد. اما بشنویم از برادر پرکار. اون از صبح تا شب کار می کرد و زحمت میکشید و عرق میریخت. اما اصلا تو کاراش موفق نبود و هر روز از روز دیگه کار و زندگیش خرابتر میشد. تا اینکه یه مدت گذشت و دید که از تمام اموال و املاک خودش دیگه چیزی رو نداره و تمام املاک و دارایی‌های خودش رو از دست داده و به جایی رسیده که حتی دیگه نمیتونه یه کفش بیارزش و کمبه ها رو هم برای خودش بخره و اینجا بود که ناچار شد پا به بره به پیش برادر بیار و تنبل خودش رفت و رفت و رسید به چمنزاری که محصولای برادرش بود و دید که رمه های هر کدوم فربه از روز قبل هستن و گوسفندهای زیبا و پربار و پربری داره و دید که برادرش رمه های فربه و پرپشمی رو داره. و دید که دختر زیبایی هم در سایه درختی نشسته و داره دستور میده به چوپو. این مرد پابرهنه یعنی همون برادر پرکار قسته ما رفت و به دختر گفت سلام دختر خانم روز شما بخیر این گوسفندها ها مال کی هستن؟ دختر در جواب گفت اینها همه مال من هستند، مال مردم هستند. مرد که کنجکاو شده بود گفت اون کسی که اینها مال اون هست کیه؟ و کجاست و من کجا میتونم اون رو ببینم؟ دختر به بالای آسمون نگاه کرد و گفت برادر شماست اینها مال برادر شماست من اقبال اون هستم. مرد که خیلی خشمگین شده بود برگشت به دختر زیبا گفت اقبال من پس کجاست؟ چرا اینقدر اقبال من از من دوره؟ آنا آیا من میتونم اقبالم رو پیدا کنم؟ دختر بهش گفت آره میتونی برو دنبال اقبالت بگرد. برادر پرکار که این حرف ها رو شنیده بود و از دیدن گوسفندان پرپشم و چاق و چله برادرش که تنبل و بیار بوده و اصلا زحمتی هم به خودش نداده بود برای نگهداری این گوسفندها خیلی ناراحت شد. رفت و پیش برادرش و شروع کرد به گریه کردن. برادر اون رو در آغوش کشید و بوسه های گرمی بر سر و صورت اون زد و گفت ای برادر من مدت زیادی تو رو ندیدم تو این مدت کجا بودی چیکار کار می کردی و دلش برای برادرش سوخت در جعبه ای رو باز کرد و از اون کفشینو و کیسه ای از پول درآورد و به برادرش داد و گفت چند روزی پیش من مهمان باش و اینجا از خوردنی ها و نوشیدنی های خوب من استفاده کن تا کم کم آبی زیر پوستت بره و این بدن لاغر و استخونید جون بگیره و بعد از من جدا شد. برادر پرکار و لاغر پیش برادرش موند و چند روزی خورد و به خوشگذرونی استفاده کرد و موقعی رفتن مقداری نون و مواد خوراکی در خورجین اسبش گذاشت و راه افتاد رفت تا بره و اقبال خودش رو پیدا کنه. همه ی روز رفت و رفت و رفت تا رسید به یک درختی که زیر اون درخت پیرزنی زشت و جند پوش اونجا خوابیده بود مرد ترسید و فکر کرد که این پیرزن عجوزه کیه که اینقدر زشت و بحشتناکه اما پیر زن که از صدای راه رفتن مرد پرکار از خواب پریده بود، از خواب بلند شد و موهای آشفتش رو کنار زد و گفت ای مرد تو باید از خداوند سپاز باشی که این کفشهای نورو هم به دست آوردی چون من سرنوشت تو هستم. و اگر بیدار بودم ممکن نبود اجازه بدم که تو حتی این کفش و لباس زیبا رو هم صاحب بشی. مرد پرسید چرا همچین تصمیمی رو گرفتی و همچین اقبالی رو برای من در نظر گرفتی. اصلا سرنوشت من کجاست؟ من چیچوری میتونم سرنوشت و اقبال خودم رو به دست بیارم؟ پیرزن بهش گفت خودت برو و پیداش کن. مرد فقیر تصمیم گرفت بره و بره تا بتونه سرنوشت خودش رو پیدا کنه. شب شده بود تو جنگل راه رفت تا رسید به یه دهکده. اما هنگامی که داشت از دهکده عبور کرد رسید به یه مرد پولدار و توانگرد که از لای پنجر یاشپسخونش داشت مرد فقیر رو نگاه میکرد. مرد فقیر پیش خودش گفت بهتر من برم و از این مرد توانگر درخواست کنم که امشب من شام مهمان اون باشم. مرد فقیر رفت و در خونه مرد توانگر رو زد و گفت سلام اصرتون به خیر. مرد طبانگر بهش گفت، اصر شما هم بخیر، خدا پشت و پناهد، مرد فقیر بهش گفت، آیا من میتونم بیام اینجا بشینم و از این خوشمزه ای که شما درست کردی من هم استفاده کنم؟ مرد توانگر بهش گفت بله بیا و کنار من بشین و از این پاتیل غذا که من پختم استفاده کن چون مرد توانگر یک دیگ بسیار بزرگ غذا روی اجاق گذاشته بود. مرد فقیر بهش گفت این همه غذا رو برای کی میپذیم؟ مرد صاحب خونه با ای متعجب گفت من مرد بسیار توانگر و پولداری هستم. اما هر کاری میکنم نمیتونم گذارا و خدمه خودم رو سیر کنم اینقدر غذا درست میکنم و به اینها میدم اما اینها در موقعی خوردن غذا اینقدر ولع دارن که غذای همدیگر رو هم از دست هم میقاپن و میخورن و اصلا سیر نمیشن چند دقیقه دیگه وقتی کارگر وارد داش پس من شدن تو اینها رو نگاه کن و ببین که اینا چه جوری غذا میخورن و حتی از استخونهای های غذا هم دریغ نمیکنند. در این هنگام دختری وارد آشپس شد و مرد فقیر حیرت زده نگاه کرد و دید که یه پیر و پیر زنی هم گوشه آشپزخونه آشبازخونه نشستن انقدر پیر هستن که نگو رو کرد به مرد توانگر و گفت این پیرمرد مرد پیره زن کی هستن مرد توانگر گفت اینها پدر مادر من هستند. انقدر پیر شدن که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد منم خسته شدم از نگهداری اینها چون اینها با اینکه این همه سن ازشون گذشته و بسیار پی رو فرتوت هستن اما فوت نمیشن منم خسته شدم از نگهداریشون اینجا نشستن و از تهمونده غذای کارگرها و این دختر کلفت من استفاده میکنن و رو کرد به مرد فقیر رو گفت تو داری چیکار میکنی تو داری کجا میری مرد فقیر هم گفت من دارم میرم و دنبال سرنوشت خودم میگردم دارم میرم تا سرنوشتم رو پیدا کنم مرد توانگر بهش گفت ای برادر اگه روزی سرنوشت رو پیدا کردی منو هم به یاد بیار و به اون بگو چرا من دوچاره همچین زندگی هستم و یه همچین بلایی من رو گرفتار کرده که کارگرام رو نمیتونم سیر کنم و پدر و مادرم هر روز دارن فرتودتر میشن و من از دست پدر مادرم نمیتونم خلاص بشم. مرد فقیر به اون قول داد تا وقتی که به جستجوی سرنوشت پرداخت و سرنوشت رو پیدا کنه حال و هوای این مرد توانگر رو هم به سرنوشت بگه و جواب سرنوشت رو برای اون بیاره. مرد فقیر شب پیش مرد توانگر موند اما صبح راه افتاد رفت و رفت تا بتونه سرنوشت و اقبال خودش رو پیدا کنه. رفت و رفت تا رسید به دهکده دهکدهای هوا تاریک شده بود خسته و گرسنه بود رفت و در یک از خونه ها رو کوبید مرد فقیر و توهیدستی دستی در و براش باز کرد سر شام مرد توهیدست سرگذشت خودش و اهل و عیالش رو برای این مرد قصهٔ ما تعریف کرد و گفت ای مرد خوب تو که به جستجوی سرنوشت میری اگه اون رو پیدا کردی برای من همکاری بکن و از اون بپرس چرا تمام چار پایان من مریض میشن و میمیرن و من خیلی توهی دست و تنگ دست هستم مرد داستان ما بهش قول داد که وقتی سرنوشت رو ببینه از اون راجب به این مرد فقیر و چارجویی اینکه چیکار چیکار کنه تا این مرد فقیر توانگر بشه از سرنوشت بپرسه روز بعد رفت و رفت و رفت پاپای خسته تا رسید به یک رود خونه. به رود گفت ای رود میتونی منو به ساحل ببری چون من خیلی خسته هستم. رود بهش گفت ای مرد تو کجا میری؟ گفت ای رود بزرگ من در پی سرنوشت خودم هستم. رود بهش گفت باشه من تو رو میبرم و به ساحل میرسونم اما از تو یه خواهشی دارم وقتی که رفتی و سرنوشت رو پیدا کردی لطفا از سرنوشت بپرس که چرا من ای ندارم مرد گفت ای رود زیبا من وقتی رفتم و سرنوشت رو پیدا کردم حتما در رابطه با تو هم ازش سوال میپرسم مرد فقیر رفت و رفت تا رسید به جنگلی تاریک اونجا زاهدی رو دید رفت به سمت زاهد و گفت ای زاهد تو اینجا چیکار کار میکنی؟ زاهد بهش گفت ای مرد فقیر تو در دل این جنگل تاریک چیکار کار میکنی؟ گفت من دارم میرم دنبال سرنوشتم میگردم. زاهد بهش گفت اگر رد بشی از این کوه بلند اون طرف کوه به یک کاخ میرسی. اما مواظب باش وقتی به اون کاخ میرسی و با سرنوشت روبرو شدی از اون اصلا سؤالی نپرس و اصلا باهاش حرفی نزن چون ممکنه باعث مرگت بشه هر کاری که اون کرد تو هم انجام بده مرد گفت ای زاهد مهربون خیلی ممنونم که من رو راهنمایی کردی خدا نگهدارت باشه مرد فقیر رفت از سربالایی کوه بالا و رفت یک روز کامل راه رفت راه رفت و راه رفت تا رسید به اون طرف کوه و خودش رو در برابر یک کاخ زیبا و بزرگ دید که پنجره های بسیار پرنوری داشت. از دروازه های کاخ وارد شد و رفت به درون کاخ و پاشو گذاشت به تالار زیبای کاخ و دید که اونجا خدمتکاران بسیاری دارن کار میکنند و سرنوشت پشت میز غذاخوری تنها نشسته. مرد توهیدست است میخواست به سرنوشت شب بخیر بگه اما یاد حرف پیرمرد زاهد افتاد و حرفش رو خورد و ساکت نشست پشت میز و شروع کرد مثل سرنوشت به غذا خوردن. سرنوشت بعد از اینکه که و خود چند خمیازه کشید و به بستر خواب رفت. اما نیمه های شب با صدای هلناکی از خواب بیدار شد. در این سر و صداها سرنوشت مردمی رو دید که دارن میان سمتشت. میگن ای سرنوشت ای سرنوشت امروز 500 تا آدم پا به عرصه زندگی گذاشتن. میخوای به اونها چه چیزی رو ببخشی سرنوشت از بستر خودش بیرون اومد در صندوق بزرگی رو باز کرد که پر از پول بود دو دست خودش رو داخل اون صندوقچه کرد و مشت مشت سکه زر برداشت و در کف اتاق ریخت و گفت برین و خوش باشین و تا پایان عمر روزگار خودتون رو سپری کنین. در این هنگام این سر و صداها خوابید و مرد توهی دست و سرنوشت دوباره خوابیدند. روز بعد دوباره همین اتفاقها ها افتاد. و مرد توی دست و سرنوشت، دوباره از صبح تا شب با هم بودن اما با هم کلمه حرف نزدند دوباره غذا خوردند و خابیدند دوباره در نیمه های شب مرد فقیر دید که دوباره صداهای بسیار بلندی میاد که میگن سرنوشت سرنوشت امروز هفت تن پا به این دنیا گذاشتند چی دلت میخواد که به اونها ببخشی سرنوشت دوباره از جای خودش بلند شد و رفت سمت صندوقچه چوبی در اونو باز کرد اما درون اون تعداد تعداده کمی کیسه پول مونده بود همونها رو برداشت و به کف اتاق ریخت و گفت از این کیسه های زر استفاده کنید و تا پایان عمر خوش و خرم باشید. دوباره برگشت به رختخوابش. مرد توحید است که تمام اینها رو دیده بود. دوباره خوابید و روزهای پیاپی پی همین وضع ادامه داشت تا اینکه سرانجام مرد توحید است خودش رو از اون کاخ زیبا درون کلبه‌ای بسیار کوچک و فقیر دید. اون روز صبح سرنوشت بیل و کلنگی رو برداشته بود و به کش رفته بود تا اونجا کار کنه. مرد تنگ دست هم به سفارش زاهد هر کاری سرنوشت میکند انجام میداد. دنبال سرنوشت رفت از صبح تا غروب توی اون کش شروع به کار کرد و شب خسته و گرسنه به اون کلبه ی حقیر برگشتند. در اونجا سرنوشت یک کوزه آب و یک نان کوچک داشت نان رو بدونیم کرد و بدون اینکه حرفی بر زبان بیاره نصف اون رو به مرد فقیر که مهمانش بود داد و روی حسیر دراز کشیدند و خوابیدند. دوباره نیمه های شب سر و صدا بلند شد که ای سرنوشت سرنوشت امروز نخصد تن پا به عرصه این جهان گذاشتند به اونها دلت میخواد چی بدی. سرنوشت در صندوق رو باز کرد اما در اون اون صندوق جز دو تا پول سیاه و مقداری گرد و خاک دیگه چیزی باقی نمونده بود. همونها رو برداشت و ریخت کف کلبه و گفت همونطور که من امروز زندگی کردم اون 900 نفر هم همینجوری زندگی کنن تا پایان عمر. مرد توحیده است که خاموش و ساکت تمام اینها رو نگاه میکرد در تعجب بود و دوباره خوابید. اما صبح فردا که بیدار شد دیگه نخودش رو درون اون کلبه هم ندید یعنی دیگه هم کاخ ناپدید شده بود و هم کلبه و دیگه سرنوش چیزی برای خوردن هم نداشت اینجا بود که سرنوشت سکوت خودش رو شکوند و به مرد فقیر گفت ای مرد برای چه اینجا اومدی؟ مرد فقیر که خسته شده بود و کاسه صبرش لب لربلیز شده بود داستان خودش رو تعریف کرد و گفت ای سرنوشت من اومدم ازت بپرسم که چرا بخت من این چنین سیاخ شده. سرنوش سر خودش رو تکون داد و گفت تو خودت دیدی که من چگونه سکه های زرم رو در شب نخست و شب ورودت به خونه و کاخ من تقسیم کردم احتمالا تو در زمان تقسیم فقر و تنگ دستی من بودی و برادرت در شب خوشبختی من به دنیا اومده و به خاطر همین تا پایان عمرش خوشبخته و تو برای رسیدن به خوشبختی باید بسیار تلاش کنی اما حالا که با کمال تعجب تونستی من رو پیدا کنی من میخوام به تو کمکی کنم برادر دختری داره به نام ملیتا که اون هم مانند پدرش بسیار خوشبخته برو و اون دختر رو به خونه خودت ببر و مثل همیشه کار کن و هرچی که به دست میاری و یا صاحب اون میشی بگیر و بگو که این متعلق به ملیتا. مرد که این طرحو بسیار پسندیده بود خوشحال شد و از سرنوش سپاس گذاری کرد و گفت من شبی رو توی کلبه دوست توانگرم گذروندم در جنگل و مشکل اون مرد توانگر رو هم به اون گفت. و سرنوشت ابروهاش رو گره انداخت و گفت به خاطر پدر و مادرش هست که اون مرده توانگر نمیتونه کارگرای خودش رو سیر کنه. اون مرد باید به پدر و مادر خودش احترام بذاره و پدر و مادر خودش رو گرامی بداره نه اینکه استخونهای غذا رو بده پدر و مادرش بخورن اون اول باید پدر و مادرش رو تمیز و آراسته بالای میز بنشونه و به اونها غذا بده اونها که غذا و شربتشون رو خوردند و نوشیدند بعد کارگرهاش رو صدا بزنه کارگرها غذا بخورن وقتی که اینجوری بشه اون هم به خواسته دلش میرسه مرد فقیر از سرنوشت تشکر کرد و گفت ای سرنوشت، من ازت یه سوال دیگه‌ای هم دارم من داشتم از رودخونه‌ای رد می شدم که اون رودخونه شاخه ای نداشت و به من گفت که از شما بپرسم و بگم که چرا اون شاخه ای نداره مرد سرنوشت گفت بعد از اینکه از رودخونه رد شدی برای اینکه اون تو رو داخل خودش غرق نکنه بهش بگو علت اینکه تو شاخه ای نداری اینه که تا حالا انسانی رو درون خودت غرق نکردی مرد گفت باشه مرد فقیر دوباره فکر کرد و گفت ای سرنوشت من یه شب دیگه ایم تو کلبه یه مرد فقیر روستایی بودم که اون هم گوسفنداش هر روز لاغر می و می و به من گفت وقتی سرنوشت رو دیدی ازش به پرس چرا من بعد اینجوری بشم سرنوشت در پاسخ گفت به اون مرد بگو لاغرترین و مردریترین گوسفندانش رو در عید قربان نکشه اون برای قربانی عید قربان گوسفنده چاق و چلش رو قربانی کنه مرد که جواب سوالهای خودش و سوالهای دوستاش رو گرفته بود از سرنوش خدافزی کرد و اومد و اومد تا رسید به رود به رود گفت ای رود منو از خودت عبور بده و برسون به ساحل تا من جواب سرنوشت رو به تو بدم رود مرد رو به ساحل رسوند و مرد پاسخ سرنوشت رو به رود داد و گفت تو به خاطر اینکه تا حالا کسی رو تو خودت غرق نکردی نتونستی شاخهی داشته باشی از رود خدافزی کرد و دوان دوان خودش رو به بالای تپهی رسون تا غرق نشه رفت و رفت تا رسید به اون مرد توهیدست کشابرز و به اون گفت این مرد من سرنوشت رو دیدم و جواب سوال تو اینه که در روز عید قربان تو چاخترین گوسفندت رو قربانی کنی و به این صورت صاحب گوسوندان فربه میشی مرد فقیر تشکر کرد و مرد قصه ما رفت و رفت و رفت تا رسید به کلبه اون مرد توانگر که پدر و مادر پیری داشت مرد روستایی توانگر بهش گفت ای مرد فقیر آیا تونستی سرنوشت رو ببینی و سؤال من رو ازش بپرسی مرد گفت آره من سرنوشت رو دیدم بهتره پدر و مادرت رو محبت کنی و گرامی بداریشون لباسهای خوب تنشون کن اونها رو بالای میز بنشون اول به اونها غذا بده اونها رو سیر کن و بعد به کارگرات این غذا رو بده مرد توانگر تشکر کرد و روز بعد این کار رو انجام داد و در کمال تعجب دید که کارگراش حتی با یه ظرف کوچیک غذا هم سیر شدند و چند روز بعد پد پدر مادرش در کمال خوبی و خوشی از دنیا خداحافظی کردند و فوت شدند اینجا بود که مرد فقیر از توانگر خداحافظی کرد رفت و رفت و رفت, و رفت تا رسید به خونه برادرش به برادرش گفت ای برادر من اومدم و از تو خواهشی دارم تا که حتی از روزی که من تو رو ترک کردم پولدار، ترم شدی؟ میتونی خواهش من رو اجرا کنی؟ بزار دخترت ملیتا رو همراه خودم به خونه خودم ببرم. تو دوستان زیادی داری که تنها نباشی، اما من تنها هستم. بزار دخترت برکت خونه من باشه. برادر تنبل پذیرفت و دخترش رو همراه برادر خودش به خونه اون فرستاد. دو برادر از هم خداحافظی کردند و رفتند عمو و برادرزاده اومدن و به خوبی و خوشی و خرمی زندگی کردند و مرد پرکار دوباره توانگر شد و هر بخر که از اون میپرسید که اینا چیه و از کی هست اینها و این مال و اموال ملکیه اون یادش نمیرفت و میگفت مال ملیتاه روزها از پی هم گذشت و کشزارهاش رفته رفته خوشه های گندم های رو دادن گوسفنداش چاق و فربه شدن یه روز مرد که در کشزارهای خودش داشت راه می رفت و از بوی عطر گندم مست شده بود و اصلا یادش رفته بود که چجوری دوباره به این مال و ثروت رسیده مردی رو دید مرد ازش پرسید ای مرد این کشزار گندم مالکیه این مرد کشاورز ما که حالا دیگه پولدار شده بود و قافل شده بود و یادش رفته بود که بگه اینها مال ملیتایه گفت اینا همه مال منه. چون این حرف از دهنش بیرون پرید انگار که یک آتیشی از زمین بلند شد و تمام کشزار این مرد رو سوزوند. مرد دوید پی آب رو گفت: من اشتباه کردم این کشزارها مال برادر زادم ملیط های من هیچی ندارم. اما آتیش دیگه تمام کشزار رو سوزونده بود و خیلی دیر شده بود. مرد خیلی ناراحت شد که درس زندگیش رو یادش رفته بود اون یادش رفته بود که از خدا تشکر کنه و بگه که اینها مال من نیست و هرچی رو که آسون به دست آورده بود از دست داد و ملیتا هم برای همیشه به پیش پدر خودش برگشت و این مرد فقیر رو تنها گذا. یاران همیشگی امیدوارم که از داستان من خوشتون اومده باشه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدارتون سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی